با احکام قرآن و سنت و با نهج سلف و صالحین برگشتیم میخواهیم دفاتیرت را در عصر فتن و فساد با عدالت الهی ممنوع سازیم پس ای تاریخ از عصر فساد محزون مباش. باش از طغیان و از حکومت‌های ظالمان محزون مباش. باش محزون ما باش ما برگشتیم و انشالله هر پارچه و ورقت را با خونهای متحر خود رنگین میسازیم برگشتیم تاریخ چهی دولت اسلامی از جماعت تا خلافت قسمت اول اسلام دینی که به نقطه کمال رسیده و امتی که احدادار خلافت اسلامی گردیده است. دین اسلام بر اراده استوار و حکمت بالغی الهی و مطابق با نیاز بشر در هر زمان و مکان به اوج کمال رسیده است. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیام الهی را به بندگان ابلاغ نمود و حق امانت الهی را ادا کرد. و در راه حاکمیت این امانت الهی جهاد نموده است. سوف لا نبالی لا نبالی ان حضرت صدی الله عليه و همچنان موفق شد تا امتی را تربیت کند که بدون برخورداری از مقام نبوت احدادار کار نبوت شود و این هم خلافات بر اساس عقیده نبوت بود. یقیناً در این برگی از قرن که مهزوم ترین قرون به شمار میرفت گروهی از مؤمنان مخلص به میدان معرکه بر تا این خلافت گمنام را دوباره برگردانند سلام علیکم و, و, و در راستای تحکیم اساسات شریعت الهی قربانی های بی‌شمار دادند بلاحره الله متعال سعی و تلاش مجاهدین را نیز نزایع نساخت و قیام دولت اسلامی را به آنها نصیب فرمود. امریکایی ها بعد آن که دست به اشغال خاک افغانستان زدند در سال 2003 میلادی ملک دیگری مسلمانان را نیز اشغال کردند و علیه حکومت برحال حال عراق لشکرکشی نموده خاطر سقوط حکومتی که عمدتا سنی ها در قدرت بودند به جنگ مسلحانه پرداختند بالاخره بعد از گزشت کمتر از یک سال حکومت عراق سقوط کرد و قدرت به دست شیعگان عراق و نیروهای وفادار به آمریکا افتید و این حکومت مرتد با همکاری نیروهای آمریکایی دست به مظالم وحشیانه و گوناگون علیه مسلمان ها زدند. فرزندان امت اسلام به طور خیلی ها نادر در صحنه ظاهر شدند تا علیه کفر و شرک و ظلم و بربریت مبارزه کنند. و به امید شکست آمریکایی ها و همکاران مرتدشان به جهاد و مبارزه مسلحانه پرداختند امور با تدریج اندکی پیشروی کرد مجاهدین نسل جدیدی را به صفوف خود جلب و جذب نموده و به ایشان تعلیمات نظامی دادند به همینطور مجاهدین به یک جنگ بزرگ آماده شدند جنگی که تا زمان ادامه خواهد داشت تا لشکر سلیب در دابق سوزانده نشود خاطر مبارزه با اشغالگران آمریکایی و همکاران مرتدشان گروه های کوچک در عراق تشکیل یافت. بزرگترین آن جماعت التوحید والجهاد بود که بر رهبری شیخ ابو مسعب الزرقاوی رحمه الله قد علم کرد. سپس شیخ زرقاوی رحمه الله با مجاهد کبیر شیخ بن لادن رحمه الله اعلان وفاداری کرد. و بعد از آن فعالیت گروه جماعت التوحید والجهاد تحت نام جدید تنظیم قاعده الجهاد في بلاد الرافدین در عراق ادامه یافت. در مدت زمان اندکی تنظیم قاعده به دست آوردهای بزرگ در عراق دست یافت. این دست آوردهای بزرگ راه اتحاد و یک پارچه شدن مجاهدین عراق را آسان کرد. و تنظیم قاعده با چند گروه دیگر جهادی در عراق تحت نام جدید مجلس شورا المجاهدین با هم متحد شدند. و شیخ عبدالله ابن رشید البغدادی منحیس مسئول این شورا تعین گردید. مجلس شورای مجاهدین نیز کارکردهای های بی سابقه ایرا در راستای تحکیم شریعت اسلامی در عراق انجام داد. نیروهای آمریکایی و مرتدین عراق تلفات سنگینی را در اثر حملات کوبنده مجاهدین متقبل شدند. معرکه بین حق و باطل همچنان ادامه داشت. در اون زمان شیخ ابو مصعب الزرقاوی نیز در اثر حملات شبانه نیروهای آمریکایی در سال 2006 میلادی به شهادت رسید. بعد از شهادت شیخ زرقاوی پرچم جهاد به شیخ ابو حمز المهاجر سپرده شد. زمان زیادی از فعالیت شیخ نگذشته بود که در سال 2006 یک نشست دیگری بین رهبران مجاهدین و سران قبایل صورت گرفت. و در این جلسه توافق بر این شد تا دولت اسلامی عراق تشکیل گردد. دولت اسلامی عراق تشکیل گردید و شیخ ابو عمر البغداد رحمه الله من حیث امیر المؤمنین برگزیده شد. پس از اعلان دولت اسلامی عراق شیخ صامب بن لادین و رهبران دیگر القایده آن را تیید نموده به مسلمانان جهان تبریک گفتند. نخوست از زبان شیخ اسامه بن نیلادین رحمه الله میشنویم. براستی که سبقت کردن تعداد از عمرای جماعت مجاهد فی سبیر الله با تعدادی از اشایر مرابط و مجاهد برای وحدت کلمه زیر کلمه توحید مسلمین را خوشحال ساخت و با شیخ بزرگوار ابو عمر بغدادی به عنوان امیر دولت اسلامی عراق بیعت نمودند. دست کشیدن این فرماندهان از رهبری و خاطر چنگ زدن همگی بر رسمان الله تعالی است و نشانه ایست بر راستی و عدالت و انصافشان. البته نشانه ایست که چیزی برای نفس خود نمیخواهند و بر مصلحت مسلمانان حریسند. الله جل جلاله به آنها بهترین پاداش دهد این اجتماعشان قدمی بزرگ و مبارک در جهت یک پارچه کردن مسلمان هاست. صر دولت الساب قامد الاسلام ب الم دولتی اسلامی از زبانی ایمن و زوایری و اخواني سلام ها و عسیپاس خود و برادرانم را و برادران مجاهیدمان در عراق ميفرستم و بر پایی دولت اسلامی عراق را به آنها تبدیق می گویم. همینطور تمام امت اسلامی را تشویق می نمایم که این دولت جوان و تازه را یاری نمایند. این دولت به ایزنی الله تعالی راه آزادی فلسطین و احیای دولت خلافت اسلامی می باشد. دولت اسلامی از زبان شیخ ابو احیای لیبی رحمه الله من اقدام برادران مجاهد در عراق مبنی بر اعلان دولت اسلامی را توفیق خاص از جانب الله تعالی میپین دارم قبل از اعلان دولت جهاد عراق بر پرتگاه خطرناک و کوشنده قرار داشت ولیکن چیزی که این لغزش ها را کشف کرد و از این پرتگاه محلک پرده برداشت اعلان قیام دولت بود دولت اسلامی از زبان شیخ مصطفی ابو یزید خراسانى رحمه الله و لدولت العراق در رابطه به دولت اسلامی میخواهم بگویم که ما آن را تایید نموده متاکنون تایید میکنیم و این تایید را ادامه میدهیم و بینوان اصول و مبادی دولت اسلامی عراق آن را در مسیر خیر و نیکی و بر منهج و عقیده صحی میبینیم دولت اسلامی از زبان شیخ ابراهیم روبایش رحمه الله یک تن از مسئولین القاعده در یمن در عراق علیه دولت اسلامی عراق مبارزه شد و این جنگ خاطر این نبود که دولت اسلامی یک حرکت مقاومتی است بلکه خاطر این بود که مجاهد است و برای تحکیم شریعت اسلامی تلاش می نماید اعلان دولت اسلامی عراق سبب شد تا هایی بیشتری زیر پرچم این دولت جمع شوان حتی تنظیم قاعدة الجهاد في بلاد رافدين نیز با دولت اسلامی عراق یک و وشیخ ابو حمزه المهاجر با شیخ ابو عمر البغدادي اعلان باید کارد ومن حیث وزیر حرب در دولت اسلامی عراق تاین گردید سيا عباد الله توبو، توبو و لا تخون ای الله توبه کنید توبه کنید و به دین اسلام برادران و جهادتان خیانت نکنید زیرا که شیطان یعنی شیطان علم و قدرت امور را بر شما مشتبه میگرداند ای بندگان الله مشخص است هر امری که بدون اجتماع ممکن نباشد جماعت در آن واجب میگردد همونطوری که علمای اصول ذکر کرده اند. هر چیزی که یک امر واجب بدون آن تکمیل نگردد کسب آن چیز واجب می شود بنابراین دفعی دسیسه مرتدین و حفظ حریم مسلمانان و مهمتر از همه اینها برپایی شریعت الله متعال بوجود نمی آید در صورتی که مردم به صورتی پراغنده و پارچه پارچه جنگ و قتال کنند در حالی که فرمانده مشخص ندارند که صفوفشان را متحد کرده و شان را جمع گردانند که در نتیجه عوامیر را از یک رأی از یک نظر و یک قلب دریافت کنند اگرچه شاخه ها و فروع از نظر طول و عرض و قوت و ضعف با هم متفاوت باشند برادر مسلمان سخن آن کس را دور بیانداز که میگوید مهم این است که دیدگاه ها و افکار با هم متحد باشد نه شمشیر و کمان چون این سخن با بدیهیات عقل و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و, و آنچه اهل حل و عقد بر آن جمع شدن مخالف است و هم اکنون زمان قاطعیت فرا رسیده است به شیخ بزرگوار و قهرمان یورش برنده حاشمی حسینی و قرائشی نسب امیر المؤمنین ابو عمر بغدادی میگویم به تو بیعت دادم بر برسم طاعت در سختی و آسانی و آسایش و تنگی و حتی اگر حقمان مان خورده شود و در امر امیر منازعه و نافرمانی نمی کنیم و هر جا باشیم حق را آشکارا میگوییم و در راه الله از ترزنیش هیچ مرامت کنندهی نمی ترسیم اعلان می کنیم که تمامی تشکیلاتی که تأسیس نموده ایم که مجلس شورای مجاهدین یکی از آنهاست، است نموده و به عنوان نماینده برادرانم در مجلس زیر سلطه دولت اسلامی عراق درآمدیم و دوازده هزار مجاهد را تحت تصرف مستقیم شما قرار می دهیم برادران و محبوبان من مگر شما هم خاطر همان چیزی که ما خارج شدیم خارج نگشته اید آیا تنها سعی و تلاشتان این نیست که سخن الله همیشه بالا بوده و سخن کافران پس باشد؟ آیا خونتان را تنها به خاطر برپایی دولت اسلامی نمیریزید؟ پس مادامی که دین و هدف ما یکیست و دشمن ما یکیست چی چیزی می شود که همگی در یک صف باشیم؟ الله تعالی کسانی را دوست می دارد که در راه او متحد و یک پارچه به منزله دیوار و صد فولادین در صف واحد میرزمند. قد لاح فجر فرق بن نصر المبید دولت الاسلام قامت بی دنائی صادقی امتی قد لاح فجر فرق بن نصر المبید شنواندگانی عزیزی را صدای خلافت شما قسمت اولی تاریخچه دولت اسلامی را شنیدید قسمت های دیگر این سلسله را در برنامه های بعدی تقیب نمایید حال برنامه گلهای خراسان آماده نشر است اسلام گل خراسان، خراسان. بر برنامه فکری تعلیمی و تربیوی. که با سطری می میکنه خلاف اسلام است میتونی تانی بر م بگوی که کدام کدام دعاها ر یاد داری دعای ننخوردن دعای ازخوخویستن دعای خو کردن اینها اطفال شعران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پام برزو است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان تو کنند بله بله اینها گل های خراسانند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 دل گفته های اطفال خراسان دو شبها از رادیو صدای خلافت دولت الاسلام صول و دحری ملت الكفر و جمع العسکری وابعث الرعب سيولا وقلعي ما تغطى من فلول منحري اي كفار, كفار. كفار ونكران كفار اي شما ميخويتك راديو الصداي خلال فترة ازبان ببريت نا حرجزنا ما اعرامنا من شين تاك احقا يقرأ بقوش امتي مزلوم ومسلمان شما بدرخت پیدا کنیم. اینو کردن کفار. با الله قسم. وعده پیامبر ما. سلّم الله علیه وصیل م حقص کشان غرب زمین از امتش می باشد سیم وصیل کتاب الفتن و شرط باب دوباره حلاب هذه امتی بعد اوم ببعد حدیث فنجازار یاکسدشیلاش عن سوبان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم این الله زواه یالارض الارض تو ما شرقها و ما غاربها و این امت سيبلغ ملكها مازوية لمنها الصوبان رضي الله عنه روايات كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرموت يقينا أنك الله جل جلاله براي من جمع كالزمينه فسديدا شخبه غاب عنده ويقين أنك بشاهي أمت من مرسد تعانجاي الزمين كبراي من جمع شخص إن الله كخلافه اسلامياس لا اخش <تصفح> خلافت های کفری چرا دهن شما را بسنم آیا رزق روزی ما مرد زندگی ما به اختیار الله از وجل نیست چرا هجرت می کنیم ای اعلمای دلسود امت شما بودید که با دعوتتان پا مردم ذحنیت تخیده درست را ردادیست حالا که خلافت قائم شد و شما ضرورت دارد چرا مانه هجرت شما من شوات آیا باید با خلافت با شما زرونی نس آیا ما شما را خبر کرده فکر کنید فکر کنید عطمی القید وخوط وقعتا شاب من هطفل قبل الاكبر احرق الاجساد شویا في النغا منظرا لم يرتسم في منظري شريعة رب سمو على على به نحيا بلا ذل علی الاسلامی السلام علیکم و رحمت الله و مسلمانان گرامی شما شنونده رادیو صدای خلافت هستیم مسلمانان گرامی ما خواستیم که امشب به شکل گروپی در ولایت خراسان از اطفال نازنین برای شما برنامه تهیه کنیم فعلا ما در یک منطقه هستیم که الحمدلله بسیار یک فضای آرام و خوشگوار وجود دارد خب شنونده های گرامی شما را در انتظار نمگذاریم میرین به طرف اطفال نازنین تا اشان را به معرفی گیرین شریعت ربنا نور به نسمو على نجمی به نحیا بلا ذل حیات الامن و السلمی شریعت ربنا نور به نسمو على نجمی بهی نحیا بنا ذلیم حیات الامن و سلمی و دولتنا لقاده <تصفيق> السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و, سلام و, سلام و, سلام و, سلام و خب اطفال نازنین با امید ای که جور و صحتمند باشید و برشنوانده ها پیام های جالب را ورده باشید خب از طرف راست شروع میکنیم و هر یکی تان به شنوندهها ها خودم معرفی بکنین درست است؟ بله. خب برادر اسم شما چیست؟ احمد. ماشاءالله احمد. میشه برم بگی از کجا اجرات کردین؟ از ایران. ماشاءالله خب میدونی که برم بگی که در آینده چی آرزو داری؟ که در آینده چی شوی خودت؟ ما میخوایم که در تمام جهان نظام خلافت اسلامی خواهم جا. اما اما یک ماشاء الله شیوهای دعوت نیفم میخواد؟ بله ماشاء الله میتونی برم بگی که چه قسم مردمه به طرف حق دعوت میتی؟ بله مثلا مردم به طرف حق دعوت میتی چه قسم دعوت میتی؟ السلام علیکم و الله و برکاته. وعليكم السلام و الله و برکاته. اسم آحمر اسم شما اسم ما ابو مسلم خراساني اجاب اسم زیبا ایداری الحمدلله مانش مامو سلمانی کل مغفتی لا اله الا الله محمد رسول الله معناه ای کلمه این است که هیچ مبوضی بر پرستش نیست وجز الله الله خالقه الله مالکه الله رازقه الله سمدی بنیازه محمد بند فرستاده الله مقصد کلمه این است که شب روز غم شادی هرچمی از طرف الله میره یک بلگه بدون امره اراده الله نمی نمیرزه الله به من شما دین فرستاده، داد ما چک کنیم دین واسه شما بیا ما نماز کنی عبادت کنی یهات کنی روزه گیری ان شاء ما معذر شما عذرم از شما راضی هستن جزاك الله خیر. خب براور گرامی اسم شما چیس؟ است عبد الله ما عبد برادر از کجا اجرات کردیم شما؟ از ایران از ایران اجرات کردیم؟ تا میخوایی که یک دعوتگر باشی؟ بله خوب عبدالله برادر پیامد به کسایی که از اسلام به دور زندگی میکنن چیست؟ بایای ما برازای که دین اسلام و دین و الله خیران خوب شنونده های گرانی میرم از بعضی دکترها هم میپرسیم که آنها چی دارن؟ اسم خودت گ رقیه خواهر بر برام بگی از کجا هجرت کردین؟ از قبل. درس میخوانی خواهر؟ آ ما الله. دا سامانای بازی کدام بازی ها خوشت می آید. دیگه فنجا از پکیه. آ ما شاء الله. رقیه خواهر میدونی برام بگی که در اینجا خوشحالستی یا در کابل خوشحال بودی؟ در اینجا. اینجا خوشحالستی؟ با <تصفيق> شاء الله. دیگه ساتری میکنی؟ دا. جزاك الله اسم خاطر چیست؟ خدیجه. ما خدیجه خواهر. خوب های گرامی شاید که با این طفل آشنایی داشته باشید به خاطر که در برنامه قبلی هم با ما بودن خوب خدیجه خواهر پیامت برای اطفال که در خراسان هستن چیست؟ پیام به اطفال که در خراسان هستند. یس زیاد کوشش کنن درس قرآن حدیث بخونن. و در بعدی قرآن حدیث دیگه در سهار هم بخوانند. تا در که, دلش دلش خوهر, در که در به درس و از افول نه نباشند که در خودی مسرباد باشن وقتی که کلاس خوان واسه اختیار خب خدیجه خواهر پدر و مادر در درس ها کمک میکنن؟ بله پدرم همراهم زیاد کمک میکنه جزاك الله خیر. خواهرت ما چیست ما الله ما الله خواهر پیامت برای اطفال که در سواحات دور ولایت خراسان زندگی میکنن چیست خلافات اسلامی این چطر است خلا موکر ما تکید نه جزاکالله خیر نام خودت چیست؟ عایشه ما شاالله عایشه خوهر عایشه خوهر از کجا هجرت کردین؟ از پاکستان ما شاالله عایشه خوهر الحمدالله رو میتونی برم بخانی؟ آه تو بخان امیدو اللهم بشتا یا رب رحمان الله جزاک الله خیر خوب شنونده های گرامی رادیو صدای خلافت شما شنیدید که الحمدلله در این فضای آرام اطفال الحمدلله بسیار خوشحال هستند و اطفال نازنین ایجا مصروف بازی هستند و بسیار همهشان از خلافت اسلامی الحمدلله راضی هستند و همهشان درس می و تعلیم و تربیه حاصل میکنند کنند الحمدلله همهشان درست اسلامی را به دست خب اطفال نازنین کوشش کنید که در های آینده بعضی پیام مقاله و یا یک تحفه به ها آماده کنیم درست است بله خوب شنانده های گرامی، سخنان اطفال نازنین را شنیدید، امید است که مورد پسندتان قرار گرفته باشد تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگرین شما را به الله عز وجل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شریعت ربنا نور بهی نسمو على نجم بهی نحیا بلا ذل. حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم ودولتنا لقد قامت على الإسلام في ختم ورغم جهادها الأعداء تسوس الناس في الحكم وكم ترعى رعاياها بتحنان وفي حلم تقوم بذاك في حرص فليس من ذنب شريعة ربنا منهاج تا منهاج برنامه فکری سیاسی نظامی و پس منظر نظام و نظامداری در مفاهیم شرعی در کل های بسیار زیاده بین امارت و خلافت وجود دارد امارت به یک تشکل قومی و به یک تشکل سیاسی با رنگ دینی قد علم کت